بسم الله الرحمن الرحیم درس بعدی متاسفانه کمکی طولانی شد یعنی فاصله بین دو درس ما ولا نافیتان ما ولاي النافیه فعل مازی و رو معلوم و مجهول شنو قبلا توضیح داد حالا میخواد بگه که ما منفی ولاي نافیه ما نافیه و لای نافیه بر سر فعل مزاره می آیند ولی در لفظ فعل مزاره هیچ تغییری نمیارند فقط معنای فعل مزاره رو منفی می کنند این دوتا لاهای دیگه ای داریم اینا روی لفظ فعل مزاره تغییر میارند ولی زمانی که گفته میشه ما ولای نافیه دیگه جداس دستان جداست وعلم انهو یدخلو على الفعل المباری ما ولا نافیتان بدان که بر سر فعل مزاره داخل میشون ما ولاء نافیه فلا تغییران او تغییر ننیدان سیغه فعل مزاره رو لفظ فعل مزاره را تقولو نیگو ای لا ینسرو لا ینسرانی لا ینسرونا از اولش که شروع کنیم لا ينصروا لا ينصرني لا لا لا لا لا لا لا تنصرونه لا تنصرونه لا لا لا لا یاری <تصفيق> میکند لا ينصروا یاری نمیکند ما ينصروا ما ينصراني ما ينصرونا الا آخر این درس ما ولای نافیه هستند که بر سر فعل مضارع می آیند فقط معنا رو منفی میکنند درس بعدی بخاطر این که این درس کوتاه هست درس بعدی رو هم اضافه میکنیم دخول الجازم و ناصبی على فعل المبارع جازم و ناصب بر فعل مضارع داخل میشوند و اونها دیگه سیغه و لفظ فعل مزارع رو تغییر میدن اگر جازمی بیاد فعل مضارع مجروم میشه و اگر ناصبی بیاد فعل مضارع مرسوم میشه خب فعل مضارع زمانی که مرفوع باشه سیغه های سیغه های که بهشون زمیر نچسبیده یزر ایبو ین سرو تن سرو این سیغه ها در حالت رفت زمه میگیرند و سیغه های بعدی پنج سیغه سیغه های خمسه که در کتب نحوصرف مشهورند اونها نونشون ثابت هست زمانی که مرفوع هستند بینید ین مرفوح هست تون ناسب اومده روش نجازم زمه گرفته یعنی سرانی مرفوح هست تون ناسب اومده نجازم علامت رفش چه همین نونی که روش هست خب دو سیغه جمعه هم همین و تنسرنه که مبنی هستند چون نون در اونه زمیر هست اما زمانی که جازم بیاد اونایی که زمه دارن در حالت رف تبدیل به سکون میشه یعنی علامت جزمشون سکون هست متلها, متلها در این سیغه ها که زمیر نیست حرف الله چنه هست میشه مثلا یرمی ترمی ارمی نرمی زمانی که جازم روشون بیاد این حرف الله هست میشه علامت جزم این حرف الله هست همانطور که در ینسرو علامت جزم سکون بود لم ینسر لم یرمی یرمی مجزوم که بشه مش میشه لم می یاش حسم میشه و اون سیغه هایی که زمیر دارند یعنی مسنها و جمع مذکر و مفرد موننس مخاطب یعنی منظور ینسرانی، تنسورانی ینسورونه تنسرونه، تنسورینه این سیغه ها که مشهور به سیغه های خمسه هستن اینا زمانی که مجرون بشن نونشون هست میشه چه صحیح باشن که موتل فرق نمی کنند ويدخل على المباراة الجاء على المباراة الجازمة فيحذف حركة الواحد ونون التثنية والجمل المذكر والواحدة المخاطلة داخل مشهد برموزات جازمة حسم يكون الحركة واحدة يعني يضربه كضربه أضربه نضربه ونون التثنية ونون مصنعة حسم شيء ما بس حركة واحدة حسم شيء لم يضربه لم ينصر ونون مسنحه شيء لم ينصرا، والجمع المذكر نون جم مذكره شيء لم ينصرو، لم تنصرو، والواحدة المخاطبة نون مفرد مؤنث مخاطب لم تنصريه، ولا يحذف نون جماعة المؤنثي. و این جازم نون جمع معنس و حسن میکرد لم یانسرنه لم تنسرنه فانه زمیرون چون این نونی که در یانسرنه و تنسرنه هست در جمع معنس هست این زمیر هست برخلاف نون یانسرانی که یانسرانی زمیر علف هست و نون علامت رف هست کلوابی فی جمع المذکری فإنه الناس زمير، إن نونك درجة موانناس هست زمير هست كالواب في جامل المذكر همان طور تركي واض درجة مذكر زمير هست، ينصرون واض زمير هست، نون علامته إرار هست، فتثبت على كل حال، نون جامل موانناس در هر حالت ثابت هست، تقوله، يقوله، لم ينصر، لم ينصرا، لم ينصروا، لم تنصر، لم تنصراء، لم ينصرنا، لم تنصر، لم تنصرا، لم تنصرو، لم تنصری، لم تنصرا، لم تنصر نه، لم تنصرا لم تنصرو لم تنصری لم تنصرا لم تنصر لم انصر لم ننصر این بود فعل مزاره صحیح اما فعل مزاره موتل که در خودش جداگانه بحث میشه فعلا ذکر میکنین تا یاد بگیرید لم یرمی یا حصد شد لم یرمی لم یارم و، لم ترمی، لم ترمییا، لم یارممی نه، لم ترمی، لم ترمییا، لم ترموع، لم ترمی، لم ترمییا، لم ترم، لم رمه، لم نرمي. که بر سر فعل بیاد انشاالله در درس بعدی توضیح خواهیم داد و پیروز باشید.